سوری مرزلات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و المرسلات عرفه فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا به نام الله که بخشا و با رحمت است قسم به فرشتگان حاملان خوبی که پی در پی فرستاده می جووند قسم به فرشتگانی که چون تند باد حرکت میکنند قسم به فرشتگانی که می گسترانند و قسم به فرشتگانی که جدا میکنند قسم به فرشتگانی که ذکر را القا میکنند چه برای اتمام حجت باشد چه برای هشدار که آنچه به شما وعده داده شده محقق خواهد شد آن هنگام که ستارگان بیفروغ گردند و آسمان شکافته گردند آن هنگام که کوهها از جا کرده شدند و آن هنگام که زمان شهادت دادن پیامبران معین گردند این کار تا چه روزی به تأخیر می افتد؟ تا روز داوری و تو چه دانی که روز داوری کدام است؟ در آن روز وای به حال تکسیب کنندگان حقایق آیا ما پیشینیان را حلاش نکردیم؟ پس بقیه را هم به دنبال آنها میفرستیم با مجرمان این گونه رفتار میکنیم. پس در آن روز وای بر تکزیب کنندگان حقاقی آیا ما شما را از آبی پست و بیمقدار خلق نکردیم و آن را در قرارگاهی مطمئن نگذاشتیم آن هم تا زمانی معین ما توانایی این کار را داشتیم پس توانایی خوبی هستیم پس در آن روز وای بر تکزیب کنندگان حقایه آیا زمین را جایگاه مردم نساختیم؟ چه زنده و چه مرده؟ ما در زمین کوه‌های بلند پدید آوردیم و از آبی گوارا سیرابتان بتان کردیم پس در آن روز وای بر تکزیب کنندگان حقایه ره سپار شبید. به سوی چیزی که انکارش ره سپار شوید به سوی آن دود سه شعبه که نه پناهتان است و نه دفع‌کننده شعله‌های آتش جرقه‌ای پرتاب میکند که مانند قصر است و چون شوتراون زرد رنگ‌اند پس در آن روز لاغ بر کنندگان حقایق امروز روزی است که قادر به سخن گفتن نیستند و به آنها اجازه اوزخواهی داده نمی شود. پس در آن روز وای بر تکسیف کنندگان و حقایق. این همان روز داوری است و ما همه شما و پیشینیان را گرد آورده ایم. اگر نقشه نجاتی به نظرتان میآید، اجرایش کنید. پس در آن روز وای بر تکسیف کنندگان و حقایق. این ال... تَذِينَا فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَثَوَاكِ هَا مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَدِيًّا أَمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ أمارو. هرمدنگاهداران حریم الهی در زیر سایه کنار چشن سارا هستند با میوههایی که دلخواهشانه است بخورید و بیا شامید به خاطر عمل کردتان گبارایتان باد ما اینچنین نیکوکاران را پاداش میدهیم پس در آن روز وای بر تکسیب کنندگان حقاید اکنون در دنیا اندکی بخورید و لذت ببرید که شما مجرمید در آن روز وای بر تکسیب کنندگان همان همانهایی که وقتی با آنها گویند بر عظمت خدا رکوع کنید و رکوع نمی کنند. پس در آن روز وای بر تکسیب کنندگان حقایق بعد از قرآن پس به کدامین سخن میخواهند ایمان بیاورند وين يوم عيد للمكذبين سدي اي حديث بعده يؤمن صدق الله العلي العظيم مرتبب <تصفيق> قاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و علیه و سلم